اگر به باده مشکین دلم کشد شاید که بوی خیرز زبت ریا نمی آف. جهانیان همه گر من امن کنند از عشق منان کنم که خدا فرماید تمعز فیض کرامت مبرد که خلق کریم گنه ببخشد و بر عاشقان ببخش آید مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید که حلقی ز سر زلف یار بکشاید را که خسن خدا داده است و حجله بخت چه حاجت است که مشاتت بیاراید چمن خوش است و هوا دلکش است و میبیغش کنون به جز دل خوش هیچ در نمیباید جمیله است عروس جهان ولی خوش دار که این مخدره در عقد کس نمی آید بلا به گفتم ای ماغ رخ چه باشد اگر به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بیاساید بخنده گفت که حافظ خدای را مبسند که بوسه تو رخ ماغ را بیا